أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خواوی سوره مبارکه الحاق هست که در ترتیب هفته دو سوره مکی هست و این سوره سورهی هست که در این سوره بیشتر تخویف بیان میشه بیم و انذار هست برای کسانی که دعوت رب را قبول نمی کنند دعوت توحید را تسلیم نمی شوند خدای تعالی از های هم دنیا و هم آخرت اونها را می ترساند بیم می دهد آغاز میشه الحاقت ملحقه حقه چیه حقه؟ این استفهام و این سوال که میگه چیه حقه و ما ادراک ملحقه خبر داری که حقه چیه؟ این استفهام را میگم استفهامی تهویلیه یعنی سوالی که حول ایجاد میکنه. گاهی کسی را میپرسی میدونی چه اتفاقی افتاد؟ همین سوال خود با خود در دلش وحشتی ایجاد میکنه اون تعجب میکنه که چه اتفاقی افتاده اینجا خدای عزوجل به همین شکل سوال میکنه خود الله سوال میکنه اول اعلام میفرما الحاق الحاق معنیش اینه که اون خبری که حق است اون حادثه‌ای که حق است اون اتفاقی که واقعا یک حقیقتی هست ملحق میدونی اون خبره که حقیقت داره چیه؟ میدونی اون اتفاق بزرگی که حقیقت داره چیه؟ یکی از نامهای قیامت هست الحاق یعنی اتفاقاتی که حقیقتان اتفاق میوفته، واقعاتان اتفاق میفته در اتفاق اونها هیچ شکی وجود نداره. و بار بار سوال کردن به خاطر تاکید و اهمیت مسئله هست به خاطر اینکه من و شما گوشهایمون را باز کنیم منو شما متوجه بشیم الله می فرماید وما ادرا حقاقه خبرداری حققت چیه؟ میدونی که اون خبری که یک حقیقتی هست یک واقیتی هست اون خبر چیه الله و جل ابتدائن از پنج قوم یاد می پنج قومی که اونها این حق را تکذیب کردند پنج قومی که اونها قیامت را انکار کردند قیامت را باور نداشتند اون پنج قوم کدوم قوم هست الله می فرماید کذبت ثمود و عادم بالقارعه اقوام خمسه خداوند از زوجل خیلی از اقوام را به عذاب گرفتار کرده اما این پنج, تارا پنج قوم را عرب ها خوب می شناختن در هر سوره یا در بیشتر سوره هایی که ذکر عذاب دنیا هست خداوند این پنج قوم را ذکر کرده اما خدای تعالی با تعبیرات ذکر می با تعبیرات جدیدی نسبت به سوره گذشته که اصلا احساس نمی کنی این موضوع تکراری هست. در هر سوره نوع بیان و نوع یاداوری این اقوام متفاوت هست. فرق میکنه لذا الله می کذبت فمود و عادم بالقارعه دو قومینا هستند. قوم سمود تکذیب کرد قوم عاد تکذیب کرد هر دو تکذیب کردن قارعه را نام دیگری از نام های قیامت قارعه هست که شما میخانید القارعه تو و قارعه وما ادراکم القارعه قارعه قارع معنیش چیه؟ صدای درهم کوبنده یعنی قیامت وقتی که آغاز بشه با یک صدای محیبی و یک صدای وحشتناک و درهم کوبندهی که همه چیز را خورد میکنه گوشها و پرده گوشها پاره پارم می کنے جگرها را چنان وحشتی کہ انسان ها جائی ندارن براوند اللہ می فرماید اون قارع را اون قیامت را کی صدای درهم کوبندی دارد اون را تکذیب کرد قوم عاد و قوم سمود وقتی که تکذیب کرد عاقبت ایشون چی شد انجام ایشون چی شد کسانی که قیامت را تکذیب کنند انجام خوبی ندارند الله میفرماید فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بالطاغیا اما قوم ثمود هلاک شد با طاغیا طاغیا یعنی صدای توغیانگر صدای کس اون صدا چنان شدید بود بعضی طاغیه را گفتم به صوت شدید طاغیه چنان صدای شدید و اون صدایی که جگرها را پاره کرد می که قوم سمود عذاب را باور نداشت قبول نداشت خدای تعالی چند صورت اینها را عذاب دادی یکی اینکه از بالا هم صدا آمد همرا با ساعقه بود ساعقه و اون برق که آمد اونها داشتن نگاه میکردن تماشا میکردن چطور درمیت به طرف ما و همین زمانی که می آمد های صدای مهیبی از بالا و اسپاین رجفه و زلزله شدیدی از هر طرف در محاصره عذاب قرار گرفتند چنان صدا مهیب بود و شدید بود که جگرهای اونها را پاره کرد الله می فرماید فاما فا ام فا ثمود فاهلكوا فا بالطاغیه با همون صدا اینها سکته کردند و مردند هلاک شدند به وسیله صدای شدید سرکش تغیانگر و, و اما عاد فاهلکوا بریح سرسر عاتیا اما قوم عاد که منکر قیامت شد انها هلاک شدند با طوفانی اما این طوفان چطور طوفانی بود طوفان چند کیفیت داشت چند صفت داشت اول سرسر سرسر یعنی خیلی سرد بود، یخ بندان بود. عاطیم، معنیش که سخت تند بود. عطوف هم سرکشی را میگن، یعنی خارج از کنترل بود. این بعد وقتی که وزید، توفان وقتی که وزید از کنترل خارج بود. و این طوفان یک لحظه نبود، یک ساعت نبود. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، خداوند این طوفان را بر اون قوم مسلط کرد هفت شب و هشت روز که هفت شب و هشت روز حسومن پیاپی بود البته حسوم دو تر ترجمه داره یکی متواطر پیاپی بود یکی حسوم به معنای نحس می آید به معنی شوم می آید که در جای دیگه دارین فی ایام النحسات در روزهای شوم و نحس لذا چنان توفانی بود که حسوم بود یعنی شوم بود هیچ فایده اید نحس کدوم بعد را میگن همون بعدی که فایده نداره زرار داره اون بعدی که منفعت نداره بلکه آسیب و مصیبت داره لذا الله میفرمید فتر القوم فی ها سرعا می قوم را در اون توفان سرعا یعنی افتادند جسدها افتاده بود اما چون که قوم خیلی مردان تنومند و قوی, قوی حیکلی بودن مثل ما ریزپیز نبودند الله تعالی می فرماید در جای دیگری از قرآن مجید که اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد اونها را خدا اینطور قوی حیکل آفریده بود که مثل اونها در شهرها آفریده نشده یعنی در هیچ وقتی از زمانها مثل قوم نداشتین این که در قدیم قد انسان ها نمیدونه متر بوده 90 متر بوده 50 متر بوده اینا تمام اسرائیلیات است اینا واقعیت نداره اما قومیات که بسیار قوی و تنومن بوده اینا تو قرآن هست الاتی لم یخلق مثلها فی البلاد و الان که قبرهای در همون منطقه یمن چون در منطقه یمن بودند یک ریگستانی بود به نام احقاف که شما سوره احقاف رحم خان دید اونجا اینها زندگی میکردند. الان که گردشگرام می روند قبرها رو نگاه میکنن، اون قبرها خیلی قبرهای بزرگی هست اون قبرها تقریبا دو برابر قبرهای ماها هست خیلی آدمهای قوی کلی بودن که قرآن می که انهم اعجاز و نخل خاویه گوی آنها تنهای درخت خورما بودند نخل خاویه. معلوم میشه که قد اونها اندازه درخت خورما و قد خورما بود اما درخت خورمایی که خاویه از درون چی باشد خالی شده باشد یعنی پوکیده شده باشد اونها را الله عزوجل وقتی که به زمین انداخت اون مردای قوی هکل را مثل یک تنه درخت اما از خالی شده الله می فرماید از من شما میپرسد اون آدم های قوی اون آدم های تنومند اون آدم های قدرتمند فهل ترا لهم من باقیه آیا می بینی از اونها کسانی را که باقی مانده باشند یعنی انسان تو هر که قدرت داشته باشی یک روزی فنا میشی و بالخصوص فنا شدن با عذاب خدا سخته است فهل ترا لهم من باقیه ای من نفس باقیه این دو قوم هست که خدا حلاکشون کرد اول سمود بعد آد گرچه از نظر ترتیب اول آد است و بعدا سمود اما اینجا برای وزن و سجع آیه اول سمود را مقدم کرد الله می فرمید و جاء فرعون و من قبله آمد فرعون و کسانی که قبل از فرعون بودند اینها ها آمده یک روزی وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةُ قوم سووم فرآن از قوم چهاریم والمؤتفقات مؤتفقات یعنی روستاها و شهرهای سرنگون شده قبل از فرآن انها بودن قوم لوط قوم لوط که خدا تعالی اصلا شهرشون را واژگون کرد شهرشون را سرنگون کرد برد به آسمان از اونجا برعکس زد چنان جبرئیل زد که امروز کسانی که رفتند دریای سیاه را دیدند این دریای سیاه در همین منطقه الان واقع شده اونجا بجای شهر اونها یک آب سیاه متعفنی هست که هر که میره از بوی اون آب متنفر میشه و منزجر میشه و میگویند که چهار متر اونجا آب عمق داره یعنی زمین را چنان کوبید که زمین ته زمین رفت الله می فرماید، هم قوم فرعون و هم اون قوم رستاهایی که سرنگون شدند و واشگوش شدند، مرتکب شدند، جا یعنی آمد آوردند، چی آوردند، چی مرتکب شدند؟ بلخاطئه، جا بلخاطئه، خطاها انجام دادند، سرکشیها کردند، تمردها کردند، خدا را رنجان دند، خدا را نافرمانی کردند، نه توحید خدا را قبول کردند، نه قیامت خدا را اقرار کردند الله تعالی می فرمد، فعصو رسول ربهم اینها همه هم قوم فرعون هم قوم لوت نافرمانی کردن رسول ربشان را فرستاده پروردگارشان را وقتی که فرستاده پروردگار را نافرمانی کردند فأخذهم اخذت الرابیه آنها را الله مؤاخذ کرد اخذت الرابیه گرفتن و مؤاخذی رابیه رابیه یعنی شدید سخت زائده في شده مازاد از نظر شدت از شدت گذشته فائق بعضی گفتند خدا مؤاخذه کرد ببینید عزیزان اینها تمام گناهی اصلی این بود که نافرمانی رسول رب را کرد امروز اگر برای افراد و آحاد این امت این نوع عذاب نمیاد اولین این دعای رسول الله صلی الله علیه و است که دعا کرد خدا یا امت من را مثل اون عذابها عذاب های استیصال نده عذابهای که شون برکنده بشه اون عذاب نده چرا عذابهای کوچکتری میاد یک جای میبینیم یک گروهی را خدا تعالی وقتی که عذاب میده در قرآن میخانیم که به هم گرفتار میشند اختلاف میکنه دیگر را میکشن این یک نوع عذابی است گاهی عذاب میده خدای تعالی یک پادشاه ظالمی را مسلط میکنه که اون پادشاه بر رعیتش ظلم میکنه گاهی یک کشوری دیگری میبینیم که مسلط میشه و اشغال میکنه و مردم را میکشه مالشون را میبره خزانه ها و سرمایه ها و معادن و خزائن نفتی هر چی دارن برای خودش میبره همین اتفاقاتی که امروز بر ما مسلمانان میفته فرق نمیکنه یا مسلمان سوریه هست یا عراق هست یا م... یمن هست همه جا این اتفاقات میفته همه مثل هم هستیم این نیست که اعمال اونها از ما بدتره ما هم براخره امروز نافرمانی رسول زیاد هست رسول صلی الله علیه و سلم 1400 سال سل سل پیش شراب را حرام قرار دادند و اعلام کردند صبح مخاندیم. امروز مسلمان مصرف میکنه. 1400 سال پیش معامله ریبا حرام شد. امروز مسلمان هیلا بازی میکنه مثل بنی اسرائیل با هیلا ریبا خاری میکنه. تمام گناهان مثل رشوه، مثل بیهجابی، مثل زنا، مثل فسادهای اخلاقی همه اینها حرام شد. امروز در جامعه عام هست این گناہا با این عمومیت زنگ خطر است، این های دنیاوی اقوام گذاشته را که ما میخانیم، باید برای خودمون بترسیم، باید بدنمون بلرزه که شرائطی و تغیانگری که امروز جامعه داره، علنن نافرمانی خدا، علنن دستورات خدا زیر پا گذاشته میشه، حال ما چی میشه؟ رضا اللہ میفرماید، فعصا رسول ربهم، انها نافرمانی کردند رسول ربشان را، فرستاده ی رب ایشان را فا اخذهم اخذت الرابیه اونها را معاخذ کرد اونها را گرفتار کرد گرفتاری‌ای که بیشتر از حد بود ان لما طغل ما حملناکم فلجاریه عذاب پنجم چهار تا دیم خواندیم قوم سمود قوم آد قوم فرعون قوم لوط این پنجمی هست اینجا ببینید با چه تعبیری که با های گذشته خیلی متفاوت الله میفرماید همان وقتی که آپ توغیان کرد آب زد بالا حملناکم فی الجاریه ای انسان ها ما رو تو کشتی سوار کردیم مگر ما تو کشتی سوار بودیم بله اون نسلی که نجات یافت ما, ما از همون نسل استیم نوح علیه الصلاۃ والسلام طوفانش عمومی بود جهانی بود فقط کسانی که بانو علیه الصلاۃ والسلام سوار کشتی شدند اونها نجات یافتند بعدا نسل همونها ادامه یافت و حتی بعضی میگویند بسیاری از علما معتقدند بقیه افرادی که با نوح بودند نسل اونها منقرض شد فقط نسل خود نوح علیه سلات و والسلام چون در قرآن آیه آمده وَجْعَلْنَا ذریته هم الْبَاقِيَةِ یعنی کسانی که عربی بلد هستم می اینجا انجا هم کی آمده برای حسره یعنی اولاد و نسل نوح را ما قرار دادیم هم الباقی فقط انها باقی ماندن یعنی هرچی انسان هست امروز از فرزندان نوح هستند همه من و شما چه سیاهه چه سفیده چه سرخ سرپوسته چه عربه چه عجمه چه مسلمانه چه غیر مسلمانه همه از همون نسل هستند خداونده عزواجل انسانیت را خطاب میکنه ای انسان ها ان لما و همانا ما وقتی که آپ تغیان کرد آب بیرون زد سرکشی کرد حملناکن فی الجاریا ما همه شمارا سوار کشتی کردیم اما حکمت حمل چیه خدای عز و ما را اونجا نجات داد بقیه انسانها مردند حلاق شدند لنجعلها لکن تذکیرتا تاکی این نجات را برای شما پند و معزی عبرتی قرار بدیم که بقیه حلاق شدن ما حلاق نشدیم و تعیها اذن و و این را حفظ کند گوش های حفظ کنندی. یعنی این درس را این عبرت را ما آویزه گوشمون قرار بریم ما به این عبرت خوب توجه بکنیم که اگر نسل اون های دیگه میموندن امروز خیلی بیشتر از این انسان داشتیم اما نسلهای اونها را خدا منقرض کرد همه اونها نابود شدند با اهل و ایالشان پدران ما نجات کردند پدر ما که نوح بود با فرزندانش نجات کرد لذا الله عز و می فرماید این درس ها باید برای شما عبرت باشد، برای شما آموزنده باشد، این عذاب دنیا بود که گذشت و هنوز هم برای بعضی از اقوام عذاب دنیا هست، می بینید امروز مردم گروه گروه می میرند، انواع حوادث، انواع اتفاقات، انواع جنگ ها، انواع بومب ها، اما این میگذرد این سپری میشه، این تمام میشه خدا نجات بده از عذاب آخرت که او همیشگی هست اونجا دیگه مرگ نیست اونجا دیگه پایانی ندارد الله تعالی بعد از این که از عذاب دنیا ما را بیم داد ما را ترساند حال از عذاب آخرت می ترساند چه رب مهربانی هست این همه وعید را این همه انذار را این همه ترس را برای من و شما بیان میکنه تا اینکه دل من و شما تکان بخورد ما نفرمانی خدا نکنیم ما هم به قیامتش باور داشته باشیم و هم به توحیدش اعتقاد داشته باشیم لذا الله می فرماید فاذا نفخ في الصور نفخه واحده هرگاه دمیده میشه در صور هرگاه فوت میشه در صور نفخه واحده یک بار فوت فقط اصرافیل یک فوت می کند او اولی هست اولی که یک سور را می زند اون بوغش را می زند تمام دنیا زیر رو اینها شه مسائلی هست عزیزان که ما اون که قرآن گفته فقط ترجمه می کنیم اما کیفیتش حقیقتش هنوز ان اتفاق نہیں افتاده کیفیت است به این خاطر زیاد اولمای اینجا تفسیر نمیکنند دیشب یک تفسیر را مطالعه کردم، یک مفسر بزرگواری که خیلی احتیاط میکنه می می نوشته بود که من فقط ترجمه میکنم جرات نمیکنم این مسائل را باز کنم معلوم نیست اتفاقاتی میافته هر که تو قرآن آمده فقط همونها را باید بیان کرد. لذا الله می فرماید فاذا نفخ في السور هرگاه سور دمیده میشه نفخه واحده یک دمیدنی، یک فوت شدنی و حملت الارض والجبال زمین حمل میشه یعنی برداشته میشه کوها حمل میشه فدکتا دکتا واحده اینها کوبیده میشه به هم زده میشه به هم دکتا واحده یک کوبیده نی یک بار خدا یک زربه میزنه یک زربه اما چنان زربه که سبحان الله تمام کوها پودر میشند یسالونه که عن الجبال میپرسن که خب این کوها قیامت کمید چی خواهد شد مشرکین می پرسیدن فقل ینصفها ربی نصفا ای پیام جواب بده که رب من انها را پودر می کند پودر کردنی فیزروها قاعن صفصفا این زمین یک بیابانی می ماند که صفصف است یعنی هیچ آب و علف و گیاه روشنی صاف صاف است لذا اللہ می فرمائے فدکتا دکتا واحدا درهم کوبید میشه, در میشه دکتم واحده یک کوبید شدنی فیوم اذن وقعت الواقع در ان روز واقع میشه ان چیزی که واقع میشه یکی دیگر از نام های قیامت چیه واقع هست همین ها سوره ها هم سوره واقع داریم اس ایک نام دیگر اش حاقه سوره حاقه داریم ایک نام دیگر کمروز خان دیم القارعه سوره القارعه داریم یہ تمام نام های قیامت الله عز وجل در قیامت چقدر تاکید میکنه چقدر سوگند میخوره چقدر الله تعالی دلایل میاره تا ما شما باور کنیم اما هنوز انسان باور نمیکنه باور نداره که بی نمازی میکنه نماز نمیکنه چون باور نداره زکات نمیده چون باور نداره دزدی میکنه راهزنی میکنه گروگان گیری میکنه قتل میکنه خون رزی میکنه چون باور نداره اگر باور داشت و میدونست اونجا چه خبر این احوال تو دلش بود هیچ وقت انسان این جنایتها را نمیکرد غن اعتقاد و باور نسبت به قیامت ضعیفه شما مؤمنین اگر میخواهید اعتقادتون قوی بشه همیشه این سوره را بخانید رسول الله صلی اللہ علیہ به بکستت این سوره را در نماز تلاوت می کردن در که قاف راکه دلائل قیامت در نماز جمعه می حضرت لذا الله می فرماید فیوم اذی وقعت الواقع در اون روز اون واقعی بزرگ ان حادث و اتفاق بزرگ واقع میشه شے و السماء آسمان شکافت میشه پار پور میشه تکه تکه میشه فهی یوم ایدن واحیه در اون روز آسمان از هم گسسته واحیه یعنی سست و استوار از هم گسسته و از هم جدا شده میشه مگه فرشدهات تو آسمان نیستن تکلیف فرشدهات چی میشه فرشدهات میرند خالی میکنند علا ارجائیها کناره و اطراف میستند فرشتہ تمام آسمان را تخلیه میکنند و يحمل عرش ربك فوقهم یوم اذن ثمانيه الله می فرماید عرش پروردگارت را در اون روز 8 تا فرشته حمل میکنند یوم اذن ثمانيه 8 یعنی 8 عدد الله عالم روایت های ضعیف زیاده تو روایتی هست که چارتا تا فرشته که پاهایش زیره زمین ها هست و سرشون بالای آسمان ها هست یعنی قد بزرگ هستن الان هستن اما اون روز که همه چیز در هم بر هم میشه زمین و آسمان از هم میپاشد فرشته ها چارتا،, چارتا هشتا میشند بعضی میگنه الان هم هشتا هستن اون روز هم هشتا اما هشتا به چه معنا؟ بسیاری از اعداد که در قرآن کریم میعید مثلا در باره جهنم میعید که اونجا داروغه های جهنم نوزده تا هستن این اعداد در واقع امتحان هستن برای ما انسان که فکر منو اخی چارتا چطور 80 چطور نمیدونیم چطور ایمان بالغیب همین است که باید باور کنیم در باره اون نوزده تا فرشته مشرکی خندید مسخره کردند یکی از اون کشتگیرانشون بود گفت که جوان های نوزده 19 تا هستند داروغه جهنم هفته تا را من تنهایی حریف میشم دو تا روشو نمیتونه حریف بشیت گفتم میتونیم مسخره کردند الله عز وجل می این اعداد را که ما ذکر میکنیم اینها امتحان هستند فقط همینقدر بدان هشت تا روایت مختلف عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم می فرماید که هشت یعنی ثمانيه صفوف من الملائكه هشت صف از ملائکه هستند به اصطلاح ما امروزی هشت تا گردانند هشت لشکر از ملائکه اما هر یکی جمعیتشون شون چه چه است؟ لا يعلم و عددهم الا الله تعدادشون را رو بجز الله هیچ کس نمیدانند. لذا معلوم میشه که تمام دنیا در هم بر هم میشه آشفته میشه عرش را حمل میکند عرش رحمان را 8 تا فرشته الله میفرماید که احوال شما انسان ها چه میشه بعد از حشر بعد از زنده شدن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا در آن روز شما انسان ها عرضه می شید شما آورده می لا تخفا منکم خافيا هیچ کسی از شما مخفی نمی شه مخفی شونده مخفی نمی شید اینجا از دست دولت میخواد خواد دستگیرت بکنه فرار می کنی میری کشوری دیگه میری میر تو همین کشور تو یک شهری اصلا با یک نام مستعار پنہام میشه هیچ که نمیشناسه ده سال آقا فراری هست ولی راحت زندگیش میکنه دولت اون دنبالش هست تعقیبش هست ولی کسی نمیشناسه راحت اینجا اما اونجا نه لا تخفى منکم هیچ کسی مخفی نمیشه هیچ کسی پنهان نمیشه اما شما انسان ها اونجا متفاوتید احوال شما مثل هم نیست اول بشارت مجده، فااما من آوتي كتابه اما اون انسانی که نامه اعمال پروندش داد میشه بيميني به دست راستش، فيقولها و مقرؤ كتابيا، اون از خوشحالي، از بسک شاد هست، میگويد بیایید اي مردم بیایید اقرأو كتابيا، بخاني كتاب من را، از بس خوشحال است. ایسا می میکنه همه ببینن همین جا تو دنیا ما مدرکی میگیریم موفق میشیم مدرک مولوی مفتیگری دکتری مهندسی این را دیگه تابلو می کنیم خونه ما میذاریم هر که مهمانی بیاد ببینه این دیگه یک بالاخره هنری هست کمالی هست که من حاصل کردم همه ببینند اونجا هم, هم چینی اونجا دیواری نیست که شما تابلو کنید به دست گرفتیم که بیا بخون ببین من پیروز شدم من موفق شدم من مقبول شدم من نجات یافتم خوشا به حال آنهایی ای که این اونجا اعلام میکنند اللهم مجعلنا منهم فیقولها امقراو کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا میگه من همین گمان را داشتم من همین حسنه زن را به ربم داشتم که با من این گونه رفتار میکند انی ملاقین حسابیه من همین حساب را از ربم دریافت میکنم من همین گمان را تو دنیا داشتم به همین خاطر رسول الله صلی علیه و سلم فرمودن که نسبت به ربیتون حسن زن داشته باشید امیدوار باشید اینقدر حسن زن مثل عمر فاروق رضی تعالی تعالیٰ که میگه من اینقدر امیدوارم و اینقدر ربم حسن زن دارم که اگر اعلام بشه همه برم به جهنم فقط یک نفر به بهشت میره عمر امیدوار است و یک نفر عمر باشد اینقدر حسن زن دارم اما خوفم همینقدر زیاد باشه ایمان و بین الخوف و الرجاع و اگر برعکس اعلام بشه همه برم به بهشت غیر از یک نفر عمر میترسیک و یک نفر عمر نباشه. لذا باید حسن زن داشت این نیزنن تو من گمان می کردم فکر می کردم بعضی از مردم بعضی از برادران خواهران پیام می نویسند دیشب یکی پیام می نوشته بود نوشته من احساس می کنم اصلا خدا منو دوست نداره چرا چین احساسی می کنی خیلی بد بینی نسبت به رب تو خداوند دو تا مشکل برای آورده یک امتحانی آورده مشکلی گرفتار شدی چند روز غم میکشی خدا دوستت نداره چی میدونی خدا داره پاکت میکنه از گناهان تو محکمتر به خدا بچسب چرا خدا دوستت نداره لذا بدبین نباشید به ربتون خدا اگر به همسایتون داده به برادرتون داده به شما نداده به اون نعمتی داده به شما نداده این را فکر نکن که خدا شما را دوست نداره خدا دوست داره خدا خیرت را مسلحتت را بهتر میدونه بلا تشبیه یک پدری هست. چند تا فرزند داره، خب شرایط فرزندانش خوبه، میشناسه فرزندان خودش را، به یکی میده میدونه که به این بدم، این بالاخره خراب نمیشه، بهتره، اما یکی دیگر کنترل میکنه، هرچی بهش نمیده، خب قطعا پدر هر دور یک اندازه دوست داره، این نیست که اون را بخواد موفق بشه، این نموفق، هم برای اون نوع تربیت دیگر در نظر گرفته، برای این تربیتی دیگری را در نظر گرفته. لذا خدای از و برای یک انسان نعمت هاورده برای کی نقمت و مصیبت هاورده هر دو بنده خدا هستن بشرتی که با خدا کفر و شرک نکنند خدای تعالی قطعا خیرشون را در نظر گرفت لذا انسان همیشه نسبت به ربش حسن زند داشته باشه الله می فرماید اینی زننتو انی ملاق حسابیه من همین گمان را داشتم که من ملاقات می یعنی مواجه میشم با همین حساب خودم با همین برخوردی که الان با من شد فهو فی عیشت الراضیه این انسان در زندگی راضی خواهد بود خدا چنان زندگی بهش میده، بی دے چنان نعمت که این راضی بشه. فی جنت عالیه در اون جنتی که عالیه هست خیلی برتر و بالاست قطوفها دانیا خوشهای اون میوهای اون دانیا نزدیکش هست یعنی لازم نیست وقتی میخواد میوه بیشینه دو کیلومتر پیاده بره همینجا دست را بلند کنه شاخ میاد پایین کل وشربو به این انسان مجد داده میشه خوشخبری کل و اشربو بخورید بنوشید ان خوشگوار یعنی باتی خاطر با راحت بدون خطر بما اسلفتم فی الایام خالیه این سبب هست سبب ظاهری است به سبب اون که انجام دادی در ایام گذشته یعنی خدا می فرماید ای بنده من در ایام گذشته یعنی در دنیا خوب عمل کردی خوب الله را فرمان بردی نافرمانی نکردی گناه نکردی اگر گناهی کردی زود توبه کردی به مسجد میامدی. آمدی همیشه خدا را یاد می کردی همیشه بخشی از مالت را صدقه میدادی. دادی در ایامی گذشته خوب عمل کردی الان بخور بنوش لذتش را ببر اما الله نجات بده از اون گروه دوم دو تخوی اوخروی و اما من اوتی کتابه بشماله اما اون انسانی که نام اعمال داد میشه به دست چپش میقوله یا لیتنی لم اوتا کتاب اين حسرت میخوره این افسوس می خوره ای کاش من این پروانه امداد نمی شود این کتاب داده نمی شود و لم ما حسابیا کاش من نمی دانستم حساب من چمیشه یا لیتها کانت القاضیا ای کاش همون مرگ دنیا فیصل کن بود کانت القاضیا قاضی یعنی فیصل کننده قاضی را قاضی میگم به همین خاطر چون فیصله میکنه بین دو نفر قاضی بود یعنی کاش همون دنیا و مرکز در دنیا ما دمو فیصل میکرد دوباره ما زنده نمیشودیم چرا چون که اینجا من بد است این انسان انسانی هست که در دنیا همه چیز داشته ببینید در دنیا دو چیز انسان را معمولا از مشکلات نجات میده کسی براش مشکلی پیش بیاد پریشانی یا غدرت یا ثروت سرمایه یا قدرت بسیاری هستند که قدرت دارن از قدرتش کار میگیرند هر دوست عزیزی اعضای خانواده اگر به مشکلی گرفتار بشه به زندان بیافتلست با خودش اون را چی می کند بعضی هستند که زندان میرند اما زندان از هتل پنج ستاره هم برایشون راحت تر اونجا همه چیز فراهمه برای همه برایشون لذا چون که پارتی دارند و بعضی ها اگر قدرت نداره سرمایدار پول کاری میکنه که بالاخره اصلا معلوم نشه اما اونجا نه الله تعالی این هر رزق میفرماید هم قدرت را و هم ثروت را لذا میگوید ما اغنا عنی مالیا مال من هیچ چیزی را از من دف نکرد هیچ مشکلی را از من حل نکرد هلک عنی سلطان یا از بین رفت اون سلطان من اون قدرت من اون تسلط و پادشاهی من همه چیز رفت چی ندارم اینجا کاری نمیتونم بکنم می فرماید خذوه و فغلو این انسان را بگیرید بگیرید فغلوه یعنی اون را توق بکنید توقی بگردنش بدید یعنی اون را به اسطلاح زنجیر و زولانه کنید و توقی بگردنش بدید ثم الجحیم صلوا سپس را وارد جهنم کنید در جهنم داخلش کنید ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فسلکو سپس را در زنجیری که طول اون زنجیر 70 ذرا باش داخل بکنید چرا اونجا انسان را زنجیر میکنه مگر اونجا جای فراری هست نه جای فراری نیست این نوع توهین هست نوعی تزلیل هست این انسان را زلیل می اونجا. تو دنیا هم گاهی همین طوره گاهی بعضی کشورها هستند که مجرمین را می گیرن. این مجرمین آدم بزرگی هستند می فرار نمی کنند. دو تا سرباز میتونه ازش محافظت بکنه ده تا ماشین اطرافش هست ولی با وجودی که ده تا ماشین هست اگر را بستند تو زنجیر تو غفص گذاشتند خب میخوان خوردش کنند پس اونجا هم که زنجیر هست نه به خاطر اینکه انسان فرار میکنه خوردش میکنند ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا هفتاد ذراع یعنی خیلی بزرگ زنجیره کلا این را میگن ببندید فصلکو چرا ببینید جرمش چی بوده یک انه کان لا يؤمن بالله العظیم این به الله عظیم ایمان نداشت هرچی خدا تو قرآن می این باور نداشت. در باره قیامت می گفت قبول نداشت در بار تویید می گفت قبول نداشت. کسی که ایمان داشته نباشه. اون انسان عاقبتش اون میشه. دوم عملش هم خوب نبود ولا يحض على طعام مسکین بر طعام مسکین بر غذای بینوا. هیچ کسی را تشویق و تحریک نمی‌کرد یعنی نه خودش می کرد نه خودش به کسی لقمه نان میداد و نه دیگران را میگذاشت و اجازه میداد. بعضی هستند که هیچ خیری از آنها صادر نمیشه، اما کسی دیگه میخواد کاری بکنه به مردم را هم مانے میشه می تو دیوانه این همه اینجا خرج کردی خود زن و بچه داری به فکر آینده اونها نیستی این همین است که ولا یحض علی تعامل مسکین به طعام مسکین تشویق نمیکنه کسی دیگر را الله می تو دنیا این فرد دوست زیادی داشت همه افراد اطرافش همیشه جمع بودند و دود و آتش و کباب بود اما فله له اليوم ها هنا حمیم نیست برای او امروز امروز هیچ دوست سمیمی هیچ دوستی که به دردش بخوره نیست ولا طعام الا من غسلین و غذای هم برش وجود نداره. الا من غسلین مگر غذا چی است از غسلین هست. الله نجات بده غسلین یعنی چه؟ یعنی اون زخمهایی که مجرمین در جهنم دارند بدنشون تمام پر خوین پر زخم از یک طرف آتش میسوونه. اون زخم هایی که چرکی داره زردابی داره ارچی که جمع میشه پایین اون خیلی زیاد میشه. اون را میگه غسلین انھارا بخوردش میدند ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون اون غسلین را نمیخورد مگر خاطئون میخورد خاطئون بعضی تفسیران نوشتن تفسیر کبیر المشرکون کسانی که در دنیا با خطا زندگی کردن یعنی با شرک فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون بعد از اینکه این همه عذاب بیان شد هم عذاب دنیا از اغوا میگذشته خواندیم تخویف دنیوی و هم عذاب آخرت احوال آخرت را الله بیان فرمود حال خدای عزوجل سوگند یاد میکنه سبحان الله چه رب مهربانی است چه نیازی است که برای من تو سوگند بخورد سوگند میخوره که من تو باور کنیم الله میفرماي فلا اقسم الا لا زائده هست برای تاکید است قسم به اونچی که شما می بینید و ما لاتوبسر شما نمی بینید قسم به اونچی که شما می بینید و اونچی که نمی بینید. انه لقول رسول کریم این سخن سخن رسول معززی هست. مراد رسول معزز جبرایل است. یعنی چه؟ مطلب اینه که ببینید قرآن مجید به دو واسطه به ما می رسد از خدای عزوجل یکی به واسطه جبرائیل البته بعضی گفتن احتمالاً تفسیرش اینه علمات در باری تفسیر این اقوال دارن ولی این قول بیشتر به دل منشیند ارز می کنم قرآن مجید که از الله عزوجل به من و شما میرسد. به من و شما الان به واسطه ما هر دور ندیدیم ولی کسانی که در زمان رسول الله بودند به آنها قرآن رسید دو واسطه یکی جبرئیلی کی رسول الله جبرئیل را ندیدند رسول الله را دیدند لذا الله عزوجل هر دو را شاهد میگیرد هر دو رسول هستند جبرئیل رسول است به معنی اینکه فرستاده خدا است به طرف رسول الله و رسول الله رسول است چون فرستاده خدا است به طرف تمام انسان ها لذا الله می فرماید فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سوگند به آنچه که شما می بینید یعنی رسول الله و ما لا تبصرون آنچه که نمی بینید کی جبرائیل سوگند به اینها که انه لقول رسول کریم این واسطه وحی همانا این سخن سخن رسول کریمی هست سخن رسول معززی هست و ما هو بقول شاعر، این سخن سخن شاعر نیست، این سخن سخن کسی که شعر بگوید نیست، شما پیغمبر را میگی شاعر، قلیلا ما تؤمنون، یعنی خیلی کم شما ایمان می آورید، و بعضی گفتند قلیلا به معنی عدم هست، یعنی اصلا شما ایمان نمیآورید. آورید، داستانی واقع تو یک تفسیر نوشته بود، که عمر فاروق رضی الله تعالی نو ذکر تو تفاصیل هست روایتی هست از عمر فاروق که یک روزی من رفتم اطراف خانه کعبه دیدم اون وقت من مسلمان نبودم ایمان نداشتم دیدم که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نماز میخواند، یا قرآن تلاوت میکنه بلاخره تلاوت قرآن را شنیدم دیدم چقدر این قرآن واقعا با فصاحت و با بلاغت و چه مطالب زیبا و چه مطالب جالبی داره بیان می کنه گفتم تو دلم گفتم عجب شاعری هست چقدر زیبا این شعر میسورایت تو دلم نسبت به پیغمبر گفتم همین که اینا گفتم این آیه را خواند و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون این قول قول شاعری نیست شما ایمان نمیارید میگه من گفتم عجب این از کجا میدونست که تو دلم ام این آمد که شایره پس گفتم عجب کاهینی هست اخبار غیب را میدونست کاهین ها اونا هستن که از طریق جنات اخبار غیب را میدونستن این که تو دلم ام آمد بعد از اون این را خان وَلَا بِقَوْلِ کاهِن ما مَا تَذَكَّرُون این وقت میگه که اولین ای که در دلم از حقانیت قرآن و رسول الله افتاد این بود بعد بعدی. از بعدی لذا این یکی از معجزات رسول الله و قرآن مجید هست الله می فرماید انه لقول رسول كريم همانا این سخن سخن رسول معززی هست یعنی جبرائیل و ما هو بقول شاعر این قول قول شاعر نیست شعر گوینده نیست قلیلا ما تؤمنون بسیار اندک هستید که شما ایمان بیاورید یا اینکه اصلا نیستید اصلا ایمان نم ولا بقول کاهن و وَهَمْچینِينَ این قول کاهن نیست پیشگو نیست اونی که از غیب خبر می دهد نیست قلیلا ما تذکرون بسیار کمپند حاصل می کنید پس چی این؟ تنزیل من رب العالمین الله می فرماید این کلام نازل شده از جانب رب عالمیان از جانب رب جهانیان نازل شده این قول شاعر و کاهن نیست این سخن پروردگار هست بعض مشرکین چی میگفتن مشرکین میگفتن پیغمبر از خود ساخته الله تعالی میفرماید که این طور نیست کسی بتونه بر ما سخنی بسازد و بسوی ما نسبت بده ما زود او را گرفتار میکنیم زود مؤخزهش میکنیم خیلی بودن در دنیا مدعیان نبوت دو ستایی در زمان خود رسول الله و متصل بعد از رسول الله که اونها فوراً از بین رفتند هر کسی که مدعی نبوت بوده اون نهزتش چراغش زود خاموش شده خدا نگذاشته که ادامه بیابد. هر دروغ امکان داره تا مدتی رواج داشته اما دروغ نسبت به خدا بده و به دروغ بگه که من را خدا فرستاده و این کلام خداست این خدا ترویج نمیده. این را خدا توفیق ادامه نمیده اما پیامبر را شما نگاه بکنید که روز به روز امرش به پیش میره الله این استدلال را می فرماید که کسی اگر بر ما دروغ بگه ما شهرتش را می زنیم اما اینکه روز به روز ترقی میکنه به پیش میره معلوم میشه این بر ما نساخته از خود درست نکرده این کلام ماست که در به شما تقديم میکنه لذا الله می, می فرماید ولو تقول علينا بعض الاقاويل تقول یعنی حرف دروست کردن مطلب دروست کردن و به خدا نسبت دادن اگر از خود درست کنه بر ما بعض الاقاويل بعضی سخنان را لا اخذنا منه باليمين ما با قوته را میگیریم بالیمین دو معنا میتونه داشته باشه یکی یمین دست راست یعنی با قدرت چون معمولا قدرت انسان در کدوم دسته؟ دست راست پس لاخذ نامین با قدرت او را میگیریم یکی اینکه نه دست راستش را میگیریم معمولا کسی که مجرم باشه دستبندش بندش میزنن دست راست معمول دست راست او را با دست چپ خودش چی میکنه؟ دست, می دست راستش را میگیریم اما اولی قوی تر است لا اخذنا منه باليمين بقوته با را میگیریم ثم لقطعنا منه الوتين سپاس قط میکنیم از او شهرکهاش را وتين اون رگهای حیات را میگویند رگ حیات را اون رگهایی که به قلب وصل هستند فما منكم من احد عنه حاجزين هیچ کسی مرا از او مانع بشه حاجزین یعنی مانعین کسی نمیتونه مانع ما بشه لذا خداي تعالی با قدرت میتونه بگیره اما چون که این کلام پروردگار است این تقوول نیست این خود ساخته نیست لذا الله عز و جل این را ترویج میده و انه لتذکرۃ للمتقین همانا این قرآن پندی هست موعظه‌ای هست برای متقین برای اهل تقوا مؤمن و متقی از این قرآن پند میگیرد و انا لنعلم ان منکم مکذبین ما میدانیم بعضی از شما تکذیب کنندگان قرآن هستید و انه لحسره علی همانا همان این قرآن یک روزی باعث حسرت بر کافرین میشه کافری که قرآن را انکار کرده شب و روز بر علیه قرآن تبلیغات میکنه یک روزی حسرت میخوره که بدبخت بودم قرآن را قبول نکردم وَإِنَّهُ حق الْيَقِينِ اللہ میفرمائی این کلام حق و یقینی هست واقعی هست یک حقیقتی هست که یقینی هست قطعی هست لذا ای مومن ای مسلمان وقتی که این قرآن از جانب الله است فسبح بسم ربک العظیم طور که این قرآن پاکی ربت را بیان کرده تو هم تسبیح بگو تسبیح بگو تسبیح من چه پاکی پاکی نام رب عظیم را بیان کن یعنی چه یعنی رب را از شرکا پاک بدان از همسر و همتا پاک بدان از دختر و پسر پاک بدان از نائب و معاون و معین پاک بدان از هر نسبت ناروایی که مشرکین دنیا به خدا نسبت میدهند، یکی پسری نسبت میده، یکی دختری نسبت میده، یکی نایبی نسبت میده، یکی شریکی نسبت، از همه اینها خدا را پاک میدان، چون قرآن همین پیام را دارد که فسبح بسم رب کل عظیم، این سوره مبارکه بود که بیشتر این سوره بحثش در رابطه با تخویف بود تخویف دنیوی و تخویف اخروی برای منکرین برای منکرین قیامت و منکرین توحید